بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله على علیه سیدنا محمد و علیه فکر در روز چهارشنبه راجبا چی خونده بودیم؟ احمد صفات الارضیه، صفات الارضیه یا همه احکام الخروف درست شد؟ <تصفح> خب اولین حکمی از احکام چی بود که خواندیم؟ اولین؟ دو حکمی روی که علمان زکر بنده، یکی همه احکام خروف بود یکی مصفه همه احکام خروف آره، عجب همه صفات بود، بعدش که گفتیم؟ باب، باب، ترقیم و ترقیق آها، اه پس بله اولن حکم حکم تفخیم بود دوم شما گفته بدین آنچان مفرقم و تفخیم خودش چند بستم شد خب پس اولن حکم از باب احکام یا صفات عرضی تفخیم هست درست تفخیم خودش رو خود می چی هست یا نیست اما به چند دسته تقسیم می شود دو دسته یکی دائمی بود یکیام, یکیام, یکیام, یکیام آه. یا بله دائمه آره خب در دا تفخیم دائمی کدام حروف بودن حروف استعلا. حروف بله حروف استعلاخ چند تاست هفتان و حروف که احیانا تفخیم می الف سی الیف و لام و پس چند تا میشه؟ سی که مکمل شد همه شان شد ده تا خیلی عالی ما راجع با حروف استعلاح قبلا خواندیم. درست در باب مستحط، در باب حق الحروف یا صفات الحروف در باب صفات الحروف استعلاح رو خواندیم که آسمانی خوانده می شد درست خواب و او تعدادش هفتاست خواب و ساد و زاد و توی و همون چندتایی که هست تا هفتا و حروف که یانم تفخیم میشه حرف الف و لام و را است درست ما امروز حرف لام را میخونیم در کل احکام لام را میخوانیم الف و شاید نتونیم بخونیم روزی دیگه میخوانیم پس عنوان بنویسین احکام و لام احکام و لام شماره بندید میکنیم آجانا؟ می خواهیم شماره بی خوبه بل بله. شماره بندید شماره اول از سیدا مفخم از خودتا احیانا بله بله احکام الله احکام الله اگر می خواهیم شماره بندی کنید بیرویسیم الحروف المفخم احیانا الحروف المفخمه مفخمه رو خوب بلدیم دیگر اون دوست دیگر نویشتیم احیانا باز بینویشتیم که الیف احکام الله الیف احکام الله نویشتیم الیف رو میتونیم آلف... خواهی نا این طوره بینوشتیم الحروف المفخمه مفخمه مفخمه مفخمتو بابا، مفخمت احیانا علیف احکام الله احکام الله نویشتیم؟ استاد اول اینی با آه اینی مفخمه مفخمه مفخمت مفخمت و احیانن علف احکام و لام برای لام ما یک سلسله احکام را دونبال طبعا میکنیم احیانن آره اولین حکمی که راج بلام لام یاد میکنیم بینویسین اولا اولا آره بعد از الف اولا لام لفظ الجلاله لامو لفظ الجلاله لامو لفظ الجلاله جلاله خلاص بله صار مني لام ايش هذا الصوت جلاله, جلاله. جلاله. جلاله. اه اه اهم شيء که ما میگیم شما هم چیزی یا بی نیستیم و که چکونی. لاملاف زل جالاله. بعدش بازم بین میشین. الیف، الیف، تفخ، تفخامو، تفخامو. یه مارو دمی آلیف خورده چه؟ بله، بازم اما روی آلیف هست. تفخامو، لام الجلالت جلالته ل مول جلالته تفخ تقدمه اذا اذا تقدم ها اذا تقدم تقدمها ها تقدم ها تقدم ها ها تقدم ها یک لحظه دقت کنیم ما و شما داریم حروف که گاه گاهی تفخیم میشه رو میخوانیم و اولین حروف که خواندیم لام هست برسود برای لام خودش گونه های مختلفی داره برسود اولین گونه لام اولا لام لفظ جلاله هست الله. جلده لامی که در اسم جلاله الله با کار رفت. درست شد انمی لام لفظ جلاله سعی کنین اولن حکمش مش تفخیمه تو لام الجلاله یعنی لام جلاله تفخیم میشه درست شد وقتی الله الله به دهن باید پر بشه الله سعی شد تفخیم میشه کای تفخیم میشه اذا تقدمها وقتی که پیش از لام جلاله بیایم چی بیاید پیش از لام جلال؟ انال یکی یکی می‌خونیم لراشد ببین یک آ یک یک فتحن فتحن فتحن او آو بامون، او زامون. فاکل دامیم. آها، می Ah, da peşişe. لا. خب پس اول مورد که لام لفظ جلاله تفخیم میشه وقتی که مقدم شوه یا فتحه یا زمه وقتی پیش از حرف لام فتحه یا زمه بیاید چی میشن؟ پرخانده میشه پرخانده خب مثال چرا بزنیم یا نزنیم؟ بزنی بزنی. مثال مثال چرا بینوشیم مثلو قال الله. قال الله <تصفيق> خوال الله خوال زمین شرم بینویسی چه عبدالله عبدالله عبدالله دیگه آره. نوشتیم؟ خب پس حالا فهمیدیم که اگر لام لفظ جلال قبلش فتحه بود یا زمه بود باید لام را پور بخانیم ای اولین صورتش هست دیگه شماره یک سعی شد؟ خب بیل دو از وزیار ما کنجا ساشی خانیم آه شما فارسی خانده ساکنون ساکنون ساکن باشه باید تفخیم کنیم ساکنون بعدا ساکنون بعد زمن بعد زمن او فتحین او فتحی، او فتحی، مثلو زمن زمان او فتحی، آه زباد ولی دیگه زمن او فتحی مثلو قال اللهم قال اللهم ا لا اله الا الله لا الله وإل الله وإل الله وإل الله, وإل الله, وإل الله, وإل الله تمام الله خطم الله الله الله الله الله الله الله الله ساکن الله الله منقاولش ها این ساکن بعد از زمه قرار گرفته باشه و بعد از فتحه قرار گرفته باشه. ساکن خودشش در نظر گرفته نمیشه. اون زمه ای که قبل از ساکنه او فتحه ای که قبل از ساکنه، مورد توجه قرار میگیره. اینجا دقت کنه نوشه قالو. قال اللهم بعد از لام ساکن تا که در لفظ جلاله میرسه. بلوس این در نظر گرفته نمیشه فقط این لام در نظر نمی‌گیره سعی شد موشه قال یعنی الله یعنی خود الله رو باید تفخیم کنیم درست آره دیگه شم و ال الله و ال الله در این ال الله باز هم لام را می‌بینیم فتحه بعد از لام کیا هست ساکینه و تا که در لام جلاله هرسه خب ای ساکنهارش در نظر نمی چون قبلش فتحه هست لذا باز هم لام را چیکار کار میکنیم؟ لام جلاله رو پر می و تفخیم میکنیم تمام تموم؟ خب ای قسمت علیف شد خلاص قسمت علیف دو شماره داشت که در صورت اول اگر فتحه باشه یا زمه باشه لام جلاله تفخیم میشه ولی اگر ساکن بود چی؟ اگر ساکن هم بود در صورت که قبل از ساکن فتحه یا کسره فتحه یا زمه باشه بازم چی پرخانده پرخانده پرخانده میشن قرخون قرخون قرخنده میشه خب قسمت بیش ترقیق هست یعنی ترقیق میشه او فکر نکنیم لازم باشه بینویسیم خاطر که آل فهمیدیم فتحه, فتحه و زمه بود تفخیم میشه یعنی اگه کس بود چی؟ باری خانه میشه آره نازوک خانده میشه درست شد؟ نازوک خانده میشه یعنی ترقیق میشه پس او را نمی قسمتی بیره داشته خب بینویسیم پس با نوشته کنیم با یه آه و تورا و تورا کقو و تورا. از کجایی آه و یک کسرتون دو ساکنون بعد, مسکو... بعد مکسور ساکنون بعد مکسورین بعد مکسورین سه تنوینون تنوینون کسی را تو نوژی بله کسرتون، دومش ساکنون، بعد مکسورین، سهومش هم تنویی نون مکسورین یا ساکنون اینش ساکنون بعد مکسورین ساکنون بعد مکسورین خب این مکسور مربوط ساکن شده؟ بله بله بله شد سهمشان تنوینون تنوینون یتنای 62 تنوینون دیگه 85 فارسی تنوینون تنوینون تنوینون خب سعی کنین در این سه صورت دام جلاله ترقیب میشم اگر کسره باشه مثل بسمیل بسم, بسم, بسم الله هم تا می گیم دیگر؟ بسم الله بسم میم دیدن که کس را دورا؟ بسم الله بسم الله بسم الله میگه دیگه دیگر سیشو؟ بسم الله یا این که ساکن باشه ولی این ساکن بعد از کسره قرار بگیره اگر بعد از زمه و فتحه بود خب باز طرف طرف نه ده. اگر بعد از کسره قرار گرفته بود باز ترقید میشه مثالش هم اینجا نوشته و ینجل্লাহ و ینجل্লাহ باشون ببین میشن امثال این مثال هست داره بی نه بعد نیست و و یوند يونج... و یوند نه یه شماره دوم میشه و ام مثال شماره دوم ساکنون بعد مکسور و یوندج و يونج... و الله و الله و با اینجا دقت کنین راحت خواه؟ سعی کنین ببین این یا که در عالم واقع معلف ممکن باشه اینجا یا هست یای ما ساکینه درسته؟ یای ما ساکینه قبل از لام جلاله قرار گرفتن نگاه میکنین قبلش چیه؟ اگه فتح و چه میشد؟ حالا که کس راید پس ایران ترقیق میکنید و یا نه درست و جایی که باس هم لام ترقیق میشه در تنوین هست یعنی تنوین قبل از لامی جلاله قرار بگیرد درست؟ مثالش هم هست قومن الله ال... این هم بینویسید اشتو اسومي اه اسومي قومن الله نبيتم الله قومن الله قومن الله زدیم دوم نکنیم در قرآن کریم یا در که چی قومن الله قومن الله این طوره نوشته دیگه تنوین فتحه نه؟ ولی ما در کجا خاندیم؟ قاید بردادی خاندیم التق رفت التقای ساکنه نه. بود نه؟ اونجا چیکار میکردیم؟ زر آه, آه یک دانه نون نون زیر یک نون زیر اضافه میکردیم میشه قومن الله اینجا وقت قومن الله خونده میشه نگاه که نون دیگه کسره پیدا کرد برد. پس اینجا باید الله را ترقیف کنیم یا تفخیم؟ تفخیم گام جلاله ترقیف بارد. میشه بوری خانده میشه قومن الله قومن الله سعیه شد؟ تمام؟ خب پس احکام لام جلالت شد تمام دقت کنین ما داریم احکام لام را میخوانیم احکام لام در قدم اول لام لفظ جلاله سعیه شد؟ لام لفظ جلاله در چند صورت تفخیم میشه؟ به دو صورت یا قبلش فتحه و زمه باشه یا فتحه و زمه قبل ساکن باشه اما در سه صورت ترقیق میشه کسره باشه؟ ساکین بعد مکسور باشه؟ تنوین باشه فهمیدیم؟ آ پس اولا لام لفظ جلاله شد خلاص دو ثانیان ثانیان بله <مهصور> نه ای باقا در کجای شما <مهصور> این مربوطی این مربوطی آنمو احکام اللام که بود نه؟ <مهصور> احکام اللام اولا ایش لام لفظ جلاله یعنی ثانیا یعنی دومش این, این دفعه کدم لام المعارفه لام المعارفه لام المعارفه لام المعارفه في لوم المعرفة في في أوائل الأسماء في أوائل في أوائل الأسماء. لام المعرفة. آه، لوم المعرفة في أوائل الأسماء. <تصفيق> نه نه بس الله خب دقت ما راجع با لام جلاله گفتیم یا تفخیم میشد یا ترقیق و لام معرفه که فی اوایل الاسما یعنی ده اولهای نامها اسما جمع اسم و منی نامها اوائل جمعه اوله سعیشو؟ لام معرفه را کسی میدانه چی هم؟ الیف لام معرفه الیف لام معرفه را نمیدانیم الیف لام شمسی و قمره را و کنیم لام معرفه و یا لام شمسی قمری تقریبا یک چیزیم تقریبا یک چیزیم مثل که چی؟ تخلص چیه؟ علوی, علوی. وقتی لام معرفه رو بیاریم میشه العلوی سعیه شد؟ ببین آنما و لام در قبل از نوم قرار گرفته السید السید یا سیده الجوهد شد؟ آقا خب لام معرفه که در اول اسم قرار بگیره دو حکوم داره الیف الف الاظهار الاظهار بیشم باز بعدن میخونیم علید قابون نشن ال از خارو آره ملک ال از خار بعد از جاء بعد از بعد از ابری ابری ابغي حجك ابغي حاجك انت وخف وخف وخف رقم ما هو رقم را، ما هو رقم ما هو مين بينين هلا يا نعم نعم بنذكروا وخف وخف الواقيم اهو باء و ثم خ قاف میم هه خب دقت کنیم به اینجا وقت در اول اسم بیایم یک حکمش اینه که باید اظهار شود اظهار شده شو. لام خوب سره خوانده شود او شد؟ اوکی هست زمانی که بعد از یعنی لام یک یعنی حروف بیا. حرف الف بیا، ب بی بیا، غن، حجیم کاف و خف خ و ف و عین و آره این حروف شد؟ آره شی و اذا جاء بعدها وقت بعد از یعنی لام معرفه یعنی حروف بیایه لام ظاهر میشه مثل چی؟ مثل خود حج الحج, الحج الحج دبنن االلهم مخنم دیگه الحج نمیگه احج ايش هذا الحج هي ماذا الخليل الخليل آري الخليل حسين الفقير <تصفح> ولد دكاتكنن ولد غير زين حروفه حروف دیگه بی آیه او زمان دیگه اظهار نمیشه آره، آري او زمان دیگه راحت میشه درست شد الفاتحه ابن الفا بعد از لان فه فه فی اینجه هست پس اظهار مونیم خیلی شد؟ نویشتیم؟ خب به شرم بخوانیم خلاس نه به شمی کنیم الادغام به ال ادغام به ال ادغام نویشتن حتما دیگه ال ادغام نویشتن نکردن ال ادغام اداجات ایذ جا ات ایذ جا ات بعده بعده بقیت الحر بقیت الحروف بقیت الحروف ازا جا از پشت جا جا ات بعدها بقیه بله ته ته بقیه آج آقای یا تشتید نداده در بقیه داره بقیه حروف تمام شد نوشتیم خب ما پیشتر خونده بودیم که لام جلاله اظهار میشه زمان که همون تعداد حروف 4 در گانه اونجا شد بیایم درست شد؟ ولی غیر از اون حروف اگر بقیه حروفش بیاید او زمان ادغام میشه الادغام ادغام میشه کی؟ اذا جاعت بعدها وقتی بیاید جای شده آره. یعنی در آلم واقع خانده نمیشه. اذا جات بعدها بقیه الحروف حروف وقتی بیاید بعد از اون لام معرفه بقیه حروف با قمانده میشه. درست؟ اونجا ما تعداد از خروف رو خواندیم دیگه چارده تا چارده تا رو اونجا خواندیم چارده تا دیگهش مانده او چارده تا دیگهش که بیاید ادغام میشه. مانند چ مانند مثلا شین شین رو از شمس. ببین ببیند ال شمس نوشته مانیم. درست شد ال شمس می ولی از شمس مخانیم. اینجا لام ادغام شد دیگه از <تصفيق> سروم معنی <تصفيق> از بینتن <الانفلانش تصفيق> از, <دلوقتي. تصفيق> از نیست ادغام یک جای شدن مطعه اینجا چ معنیش نخوندنش معنی از لام نمی شه میشه، مایاس تو میگم معنی اسو از بین رفته این رفت خلا بعد هر حال لام خب دقت کنید چه میگیم لام اگر پیش از نام قرار بگیرن، سعی کنن الف و لام اگر پیش از نام قرار گرفت نام عربی خب میشه ان میشه ان چون که ببین نون دو حرف نبود سعی کنین اگر علف لام پیش از نام قرار گرفت سعی بونیم که بعد از لام کدام حرفه اگر از او اول بود خود لامش را میخوانید اگر از او نبود نمیخوانید مریم خودش اسم عربی نیست فکرم توجه شده نا مریم اسم عربی نیست و اسمای تازه خود اسم اصلی الفلام نمی گیرم تخلص می فقط تخلص می گیرم تخلص می و آره, آره آره آره نام اصلی الحاشمه ببین اونجا ه هست اما ما هو اخر داشت اونجا جوهر خونده میشن الجوهری مشو منم سیدنا محمد محمد و علی محمد